سخنرانی دکتر محمد عصدی گرمارودی موضوع سخنرانی، عبادت خالصانه و اثرات آن با توجه به فرموده حضرت زهره سلام الله علیها نوار شماره یک الحمدلله رب العالمین السلام و السلام على سیدنا و نبینا محمد وعلى آله التيبين الطاهرين المأسومين لا سيما بقية الله في الأرزين اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يسفون السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین السلام عليك ایوها النبی و رحمت الله و السلام علی الامت الهادین المهدیین السلام علی جمیع انبیاء الله و رسوله و ملائکته اجمعین السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على علی امیر المؤمنین السلام على صدیغت الشهید السلام علی الحسن الحسین سید شباو و اهل الجنه اجمعین السلام على علی ابن الحسین زین العابدین السلام علی محمد ابن علی باغر علم النبیین السلام و علی جعفر ابن محمد, محمد بن صادق السلام و علی موسی بن جعفر بن السلام علی ابن موسی الرضا السلام و علی محمد ابن علی بن السلام و علی علی ابن محمد بن الهادی السلام و علی الحسن ابن علی بن زکی السلام علیه حجت ابن الحسن القائم سلام الله علیه من إلى الله خالص عبادته احبت الله و علیه افزل مسلحته شب شهادت بانوی بزرگ جهان اسلام و بشریت وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها چشم دل اگر باز شود و گوش دل شنوا گردد در عالم معنا و ملکوت هستی در واقع آشورایی است حقیقتا اگر به نقطه آغاز انحراف در تاریخ اسلام و عظمت مصیبتی که بر این بانوی بزرگ در جهان اسلام رخ داد بنگریم هیچ نمیتوان گفت گرچه داریم لا یومک یومک یا ابا عبدالله ولی هیچ نمیتوان گفت که یک آشورای دیگر یا زمینه آشورا از مسئلهٔ شهادت حضرت ظهرا سلام الله علیها نبوده حالا اگر در این مقوله بخوام وارد بشم بحث دیگری است و حقیقت امر اینه که آغاز همه مسائب در تاریخ اسلام به یک لحن می میتوان اثبات کرد برای بشریت از مساله حق حرمت و جسارت به صاحب حضرت زهرا سلام الله علیها آغاز شده اینکه امامان حساسیت عجیبی به مسئله شهادت حضرت زهرا نشون میدادند اینکه همه بزرگان به طبع معصومین مسئله فاطنه زهرا سلام الله علیه ها مظلومیتش شهادتش و این دوران کوتاه از عمرش بعد از رهلت پیغمبر چه تأثیری در جهان بشریت باقی گذاشته رو مرتب به رخ می کشیدن، زنده نگاه می داشتن تا این اندازه که امام صادق علیه السلام در دوران حساس فکر به جامعه دادن کلاس تعلیم و تعلم دینی برقرار کردن انحراف اندیشهها رو برای مردم رو کردن این نشون میده چقدر مهمه ولی این مسئله در چه ارزشی بوده که در کوفه کلاس درس امام صادق در یه برههای از تاریخ امامت ایشون که در کوفه کلاس درس تشکیل میشد روزی اول کلاس یکی از شاگردان مکتب امام صادق وارد میشوند امام میفرمایند چه خبر داخل شهر عرض میکند خبر خاصی نبود الا این که یک خانمی زنبیل خریدش به دست تو بازار کوفه برای خرید آمده بود پاش سر خورد با پهلو به زمین افتاد، پهلوش درد گرفت، طبق روال شیعی، ناخداگاه گفت، لعن الله ظالمیک یا فاطمه. مأمورین متوجه شدن این خانم رو بردن پیش ادارات مثلا مربوطه قضایی و حکمرانی اون زمان. تا این مطلب به امام صادق علیه السلام رسید. فرمود امروز درس ما تعتیل درس امام صادق همین امام صادقی که توجه به ارزش این مسئله از این دید بکنیم همین امام صادقی که در اصول کافی نقل شده است که میفرمایند انقدر فهم شیعیانم رو میخوام تعلیم و تعلم دینی و به مذهبی رو مهم میدانم که دوست دارم با تازیانه به سر شیعیان من بزنند کنایه از اینکه مهم وقت بگذارید تا تفقه در دین پیدا کنم. وقت این امام اهمیت تفقه در دین تعلیم و تعلم کلاس درس بحث اون همه شاگرد از راه دور و نزدیک آمدند برای یک همچو غضیهای میفرمایند درس ما تعطیل چرا؟ بعدشی از زیر این سقف بریم بیرون زیر آسمان شاگردان همه پشت سر من دعا کنید من هم دعا میکنم که خدا این شیعه مادرم زهرا رو نجات بده این جنبه تعلیمی و آگاهی بخشیدن نسبت به زنده نگه این قضیه در تاریخ تشیعه امام دست به دعا ورداشتن جمعیت پشترش آمین میگفتند پی کی رسید آقا این خانم را آزاد کردن. حضرت یک کادو تهیه کردند پیچیدن دادن به یکی از شاگردان خصوص این رو ببر به شیعهٔ ما بده و بگو ما شما را دعا میکنیم که یاد مادرمن زهرا را زنده نگاه میدارید این یعنی چی امامی که درسش رو تعطیل کنه کادو هم بفرسه بعدم بفرماد به فرماد ما دعا می کنیم که شما یاد مادر من رو زنده نگاه میدارید؟ آیا امام احساساتی بودن نعوذ بالله مسئله عاطفی سطحی علاقه به مادرشون جدشون حضرت زهراست یا مسئله هایه انحراف در تاریخ اسلام رو مشخص کردنه حضرت زهرا مرز جداکننده اسلام حقیقی و اسلام تحریفی است. حضرت زهرا اون حریم معین کننده حقیقت نبوی با اسلام جعلی به نام نبی به خورد مردم دادن لذا زنده نگه داشتن حضرت زهرا سلام علیه ها یادش خاطرش مظلومیتش، شهادتش، مکتبش، اهدافش، بیاناتش تمام زنده نگهداشتن داشتن اصل دین و پابرجایی حقیقت مکتب قرآنه چرا اینقدر دشمنان حساسیت دارند به عناوین مختلف گاهی شهادت حضرت زهرار سیر سوال ببرند گاهی مسئله حجوم به خانه حضرت زهرار رو دروغ بپندارند گاهی مسئله اعتراض این بانوی بزرگ رو به یک شکلی در تاریخ مهد کنم اما قاطل از این که اگر یک مقاله در یکی از مجلات یک سال قبل نوشته شد فاطمه زهرا از ولادت تا افسانه شهادت در این یک سال الحمدلله بیش از چارده کتاب در اثبات شهادت حضرت زهرا از سد صفحه تا هشتسد صفحه نوشته شد و چاپ شد با منابع دست اول غیر شیعی حتی خود این شاید گاهی خدا میخواهد عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد که حقایق بیشتر جلوه بشه جلوه داده بشه جواب این کتابها چی شد پس این که گاهی میگن سنگ مفت و گنجش مفت میخوان یه سنگی رو بپرانیم پرانیم یه اشکالی رو رواج بدیم یه مطلبی رو مطرح کنیم حالا شاید گرفت ولی غافل از اون که راهی را که خود زهرا سلام الله علیها با نهره شهادتش بعد از رهلت پیغمبر در پیش گرفت هر کس مختصری در ارتباط با اون بانو باشه به همون اندازه ارتباط متوجه این ارزش است که راه را باید هموار نگه داشت. چراغ را رو باید روشن کرد ظلمتها رو را باید کنار زد و عوامل رو باید نشون داد وقتی خود زهرا قیمت جان این کار را انجام میده. لذا از یک دید حقیقتا برای من سخته مخصوصاً امشب و شب این دو شب اولا صحبت کنم، حقیقتاً برام سخته، بنابراً اون چه که در ذهنم میگذره. از جهت دیگر دلم میخواد این دو شب من فقط روزه خون باشم. اگر به سلیقه شخصیم باشه، هر چه وقت دارم براتون روزه بخونم. و دو چرا؟ چراییشم مفصل بحث دارم. اما چه بکنم؟ که من اینجا با خلاف دلم عمل کنم. سعی میکنم کنم دلم زیر پا بگذارم یه مقداری بحث و کنیم بعد وارد اون قسمت بشیم حالا این پنج شب در این رابطه ببینیم چقدر به ما انایت میکنم. من این حدیث معروف حضرت زهرا رامال علیه ها رو که نوشتن براتون انتخاب کردم در کتاب تفسیر منصوب به امام اسکری علیه السلام صفحه سی بهار جلد 71 صفحه‌ی 1084 از تفسیر امام اسکیری نقل می‌کند کتاب عدت و دایی ابن فهد هلی صفحه‌ی 21 کمیه‌الخواطر از ور رام ابن ابی فراس جلد دوم صفحه 108 همه این منابع این هدیه را نقل کردن اهل اصفهان فاطمه فاطمه خلام الله علیه آفرود منع سعده الالله خالص عبادته کسی که بالا بفرستد سعود بدهد به سوی پروردگار عبادت خالصانه خودش را احبتالله الله علیه افضل مسلحته خدا از عالم بالا به سوی او نازل می کند. غوثی می نماید میفرستد برای او افضل مسلحتش را چه چیزی به صلاح اوه چه چیزی به مسلحت اوست افضلش رو عالیترینش ترینش رو خدا از بالا براش میفرسته خب پس از پایین به بالا یک وسیله حضرت زهرا برای ما معین کرده که اگر ما این کار را بکنیم از عالم بالا به پایین، انایتی که شامل حال ما میشود، شود، افزل مسلحت است. حالا افضل مسلحت فعلا بمانه. قسمت اولش منع الى الله خالص عبادته. این عبادت خالصانه رو ما بالا بپرستیم این یعنی چی؟ اجازه بدید با یه مقدمه وارد بشم؟ هم ما در این مجلس کرارن و مفصل هم در مجالس دیگر کتابها، مقالات جزوات مفصل و کرده اید فضائل حضرت زهرا مناقب حضرت زهرا شخصیت این بانوی بزرگ مفصل فقط پارسال ما پنج شب اینجا این حدیث امام صادق راجب عزت زهرا سلام الله ها رو بحث کردیم من عرف فاطمه حق معرفتها ها فقد عدرک لیلت القدر فقط این یه پنج شب بحث شد که این فاطمه لیله قدره یعنی چی؟ درک لیله قدر یعنی چی؟ و ها کذا؟ این رو مفصل بحث کرده ایم حالا اجازه بدید من این چند شب یه چیز دیگه بگم بخوام یه حرفای دیگه بزنم یعنی چی؟ فعال برای چی این همه فضائل حضرت رو نرون کنیم این همه مناغل رو برای چی میگیم آیا بیکاری میخوایم سرگرمی برای خودمون درست کنیم یا مثلا فرض کنید روحیه اساطیری داریم میخواییم اسطوره درست کنیم یا اگر قرآن کتاب وحی فاطمه رو اینقدر عظیم نشون میده پیغمبر و ما ینتقا ان الحوا اینو و الا وحیون یو فاطمه رو این چنان بالانشون میده که غیر از گفتارش در حق این بانو کردارش که بوسه بر دستش میزنه و بیان میداره ابوها فداها و هیه ام اویها اینا چیه؟ این همه بیان فضائل سه برداشت میشه داشت هر سه برداشت درسته ولی اولی بدون دومی ناقصه اولی و دومی بدون سومی ناقصه این ستا با هم با استدلالی که می‌کنیم نشونگر این واقعیت که چرا می‌خوایم در فضائل، مناقب، شخصیت و عظمت این بانوی بزرگ بحث کنیم، مطالعه کنیم و پیش بریم. چرا؟ یک واقعیت را بشناسیم. دقت می‌فرمایید؟ خودش شناخت واقعیت ارزش هست یا نه؟ خب بله. بنده بشناسم این آب است گواراست سالمه رفعه میکنه و یه خواص دیگه هم برای من و شما داره و این مایه آلوده است واقعیتی آلوده است مشکلاتی داره چنین و چنانه فقط در حد شناخده و معرفت واقعیت چیسته حضرت زهرا چیسته خیلی بالاست کوسر است رضای او رضای خداست غضب او غضب خداست اینا خوبه بله ولی کافیست نه خ خب باشه حضرت زهرا خیلی عظیمه رضای او رضای خداست غضب او غضب خداست کوسری است خیر کثیر است ام ابیهاست حجت الله علی الائمه و و و یک واقعیتی است که بنده شناختم ولی آیا در معرفت حقائق در حد هی بردن واقعیت که خود یک ارزش است کافی است یا باید پله دوم برسیم پله دوم چیه این واقعیت که این همه ارزش و آثار ارزشی دارد انسان به این واقعیت علاقه پیدا میکنه یا نه مثلا این لیوان آب گوارای سالمی است این همه خواص را دارد این لیوان دیگه مایه آلودهٔ کشندهای است این همه ها را دارد من همین پله بالاتر نیام ولی بالاترش چیه حالا که این گوارای سالم است و این فواعد رو داره بس دوست میدارم میخوامش اینو سعی میکنم به نزدیک بشم اون لیوان که معرفت پیدا میکنم آلوده است بیمار کننده است و ضرر پس نه من فاصله میگیرم میشه حب بغز دلدادگی دادگی دل بریدگی دل از او برمیکنم دل به او میدهم این مرحله دوم معرفته معرفت هر ریشعی تر ارزنده تر دلدادگی و دلبریدگی سهی مثال بزنم یه بچه توپ را دوست می دارد می برای چی چون بازی می کند یک انسان که را دوست می دارد چرا؟ یا اینکه قشنگ دوست دارم این کتاب با این جلد مخصوصا پر زرق و برقی پر شکل زیبا رو تماشا کنم مثل یه تابلو نقاشی. یا میاد پلهای بالاتر دوست دارم چون مطالب مفیدی در کتاب است و این مطالب مفید رو از کتاب میگیرم لذا معرفت دل دادن و دل کندن به اقتضای غریزه در حیوان هست در انسان هم در حد غریزه است. تا این دو پله رو میتونه در حد غریزه بالا بیاد ولی پله سومی که حساب دیگه ای داره این دو پله رو در حد غریزه بریم سراغ حیوان یه گنجش که واقعیت دانه را که رفع گرستنگی می کند با یک واقعیت سنگ ریزه که این اثر را ندارد به اختزای غریزه میفهمه یا نه فهمه غریزی این دانشت برای من خوبه چون گرسنگیمو رو برطرف میکنه این آب برای من مفیده چون اتشم برطرف میکنه اون سنگ ریزش به درد من نمیکنه به اختزای غریزه میخواد نمیخواد انسانم به اختزای غریزه این غذاش میخوام این مثلا فرض کنید آشواله نمیخوام به اخراضه غریزه این ارزا کننده شهوت میخوام این مثلا جواب لفظ شهوت نمیخوام آیا معرفتی که نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها بناس پیدا بکنیم و اون فضائل و مناقب رو بیان کنیم تا کلماتشون رو یاد بگیریم در زندگی اعمال کنیم در حد شناخت غریزی که یک واقعیت چیست و چه آثاری برای ما دارد تمام شد یا میاد یه پله بالاتر تو همین مرحله کتاب به اقتضای دلدادگی غریزی به غریزه قریزه یه بچه، یه نوجوان، یه جوان، یه میان سال، یه تو سال آقا این که پرزرگ و برق قشنگ خودش، خوشش میاد حالا من انتخاب کتاب رو بر اساس این خوش آمد باشم کافی است؟ یا پله رو بیارم بالاتر عقل، فکر، قدرت تعقل نسبت به این امور، به من بفهمون آقا میدونید این کتاب چه فوایدی داره؟ چقدر علم توشه؟ اگه این کتابو بگیری چه چیزایی میتونی یاد بگیری؟ پس به اقتضای تعقل مرحله بالاتر از زرق و درق و برق ظاهری رو میخوام که فهم مطالب، ولی از فهم مطالب پله سوم باید برسم پله سوم چیه؟ برای چی فهمم که اون فهم در عمل من چه تأثیری واقعی بگذاره سوره آل امران آیه ظاهرا نوزده باشه ان انکنتم تحبون الله فاتبعونی یحبه کم الله بگو انکنتم تحبون الله شما میگید خدا رو دوست دارم؟ اگر راست میگید خدا رو دوست دارید فتبعونی فتبعیت کنید تو عملشون نشون بدید یه به که خدا هم شما رو دوست بداره یعنی حتی در حد غریزه گنجش دانه رو دوست داره در حد اینکه چون برای من مفید است یا عملا فایدهش را میگیرد ببینید همین گنجش در حد غریزه و همین بچه در حد غریزه به اقتزای غریزه وقتی میفهمه این توپ خوب است چون به جای مثل یک گردولی سنگ نیست که نتونم باش بازی کنم پس فایده داره دارم به کار میبرم میگه دوستی خدا را شما با سم پیدا کردی یا احساساتی دارید بیان میکنید اگر دوست داری تو توعیت نشون بدید خب ما چرا فضائل و مناقب عزت زهرا رو بیان میکنیم یک واقعیت رو بشناسیم دو وقتی واقعیت رو شناختیم دلداده بشیم سه وقتی دلداده شدیم مطیع بشیم وقتی رفت چشم و دست و پا و گوش و همه وجود دنبالش بره اون همه بیان فضائل و مناقب اگر طبعیت رو به همراه نداشته باشه این در راقه نوعی تناقض رو لازم میاره خب حالا دوست داریم حضرت زهرا رو حضرت زهرا چی میفرماد؟ میگه اگر شما عبادت خالصانه رو بالا فرستادی، خداوند بهترین مسلحت رو به شما میده خب این عبادت خالصانه رو بالا به یعنی چی؟ اجازه بدید من از قرآن استفاده کنم اول با یک دو حدیث از امام صادق بحث و جلو بیارم بعد یکی که از دعای کومی یکی که از دعای عرفه یکی که از سعیفه سجادیه تا مقدمه کنم یک جمله از حضرت زهرا سلام الله علیها و بعد امشب این اجازه رو بدید دو تا روایت هم در فضایل حضرت زهرا بکنم که اگر حضرت زهرا اونه چه کرده اون شده میخواد به ما بگه شما پشت من حرکت کنید دم نزنید فقط زهرا جان دوست دارم بیا پشت من دوست داشتنتون واقعی باشه خدا میدونه رو احساس وظیفه دینی میگم این یک درد است در میان ما شیعیان گاهی بی معرفت بی تعمق بی تفکر، بی در شناخت واقعیات با احساسات سطحی پیش میروید احساسات سطحی هم تحت تاثیر عوامل مختلف شدت و ذر پیدا میکنه و گاهی به اینجا می رسد. اگر تو مرز محبت دوم اومدیم حتی بیان کنیم شما وقتی دوست داشتید کافیه اصلا این میتونه دوست داشتن واقعی باشه یا نه حالا دقیق کنید من از آیات از غوایات به اندازه ای که این چند شب فرصت اجازه میده میخوام بحث کنم سوره مبارکه یهود آیات سد و هیجده تفسیلشو از امام صادق کنم از خودمم نمیگم ولو شاء ل لجعل الناس عمة واحده خدا اگه میخواست همتون رو مردم در یک ستح یکی بالا یکی پایین نه بالا پایین به چه معنی خوشبختانه دهه محرم صبحا این بحثو کردیم صدقت در عالم نور که امام حسین به ما یاد داد یکی رفت حالا معصومین رو فعلا بذاریم کنار که ازت زهرا رو ما بگیم کجا رفته که خدا حضرت زهرا رو به رخ کائنات کشیده خدا حضرت زهرارو رو به رخ انبیا کشیده من نمیگم حدیث میگه بحث میکنم براتون یکی اونقدر بالا رفت بعد از معصومین سلمان کدوم فلس ابوذر و فزه و اینا در چه پلههایی قرار دارند خدا اگر میخواست، ولو شا اрабوکه ناسه، واحده. اگر میخواست یه کاری میکرد، همه سلمان باشید همه فزه باشید با همدیگه بالا پایی نداشته باشید، ولا یзалونه مختلفین نه، همیشه اختلاف است. لا یزال یعنی همیشه. همیشه این درجات بالا پایین پایینات یه عده بالان یه عده پایینترن. یه عده خیلی اوج گرفتن یه عده دارن کم کمی نردبانه رو میچسن میان بالا یه عدهم زیر های نردبان از اونور سیر به سوی درجات یا سقوط که به سوی درکات این دو نقطه مقابلم هم. این همیشه است الا من رحمه رب والذالكه خلقهم حالا حدیث ما صادق یعنی چی دقت بفرمایید الا من رحم ربك این درجات مختلف نیست همیشه مگر برای آن کسانی که رحمت رب ایشون رسیده والذالكه خلقهم اصلا خدا در این شمار رو خلق کرد یعنی کاری بکنید رحمت خدا رو بگیرید به اقتضای گرفتن رحمت خدا برید به بالاتر. یعنی چی؟ این آیه است حدیث امام صادق علیه السلام و السلام. در تفسیر همین آیه بهار جلد پنج صفحه سی از امل و مرحوم شیخ صدوق امام صادق زیر همین آیه فرمودند. خلقهم لیفعلو ما يسوجبون به رحمته سيرحمهم از این سری سر امام به ما یاد بده آیه رو داره امام تفسیر میکنه حالا وقتی حدیث میبینیم ظاهر آیه روشن میشه آیه چی فرمود خدا میخواد همه رو در یه طبقه قرار میداد یکی زهرا بشه در اون سطح یکی مادون معصوم سلمان بشه ابوزر بشه در اون صحه یکی من بدبخت بیچاره که در این پایین نردبان ترقیه به سوی عالم بالا یه نگاهی به با اون بالا میندازم حالا خوبه بود یه نگاهی به با اون بالا میندازم بگم وای بعضیا ها کجان من بدبخت کجام اینجا قرآن میگه ولای زالون مختلفین الا من رحم ربوک و ذالکه خلقه هم اصلا برای این شما رو خلق کرده برای این خدا شما رو خلق کرده که شما رحمت خدا را بگیرید تا داری بالا طب پا امام صادق چی میگه؟ لی ذالکه ای یعنی خلقه هم لیفعلو خلق کرده این امسان ها رو تا عمل کنند چه عملی؟ ما اون عملی که یستوجبون بهی رحمته فیرحمهم اون عملی که ایجاب کنه اون عملی که باعث بشه اون کار و فعلی که شما را مستحق رحمت خدا کند پس رحمت خدا شامل حالتون بشه در زیل آیه ما خلقت الجن نبل این الا باز کتاب،, کتاب علال و شرایه مرحوم علامه مجلسی در جلد پنج بهار صفحه سی این آیه را مطرح کنند حدیث امام صادق رو در تفسیر ما خلق تل جل نوال انس الا لیا عبدون میفرماید خلق هم لیا هم بل عباده خدا اینا رو خلق کرد امر کرد به عبادت لی ما استوجبون به رحمته ويرحموا اصلا خلق کرد یعنی شما اینجوری آفریدم برید کار کنید برید حالا ما این یه رو داره میشه تو جامعه شیعه تا آقا عمل چیه کار چیه فعل چیه خدا هر کی رو بخواد بالا میبره هر کی رو نخواد یهدیمن یشاب این معنیه نه عوذ بالله حالا میخونم آیات رو آیات من یشاب این معنیه که خدا هر کی رو بخواد به هر جا برسونه. پس این که خودش میگه لو شاعه و لو شاعه ربک لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك امام میگه آری بکن که رحمت خدا به شما برسه. یعنی همه ما که آفریده شدیم، اومدیم در این عالم. اینو دقت بفرمایید. همه ما در این عالم می توانیم به انایت فروردگار توانی که در من شما قرار داده پیغمبر و امامی که برای من شما فرستاده راهی که به من و شما نشون داده که اولا نمونه هاشو تو دعاها براتون میکنم. راهی که به من و شما نشون داده بخواه برو کار کن تا رحمتش بیاد این رحمت که اومد شما رو بکشه ببره بالا حالا دقیقه بفرمایی یکی که در دعای کمیل چی دارن به ما یاد میدن میگه در دعای کمیل همه از آنی بخونم حفظی که هم خوندی شایدم انشالله انشاءالله این قسمت کردی در ارتباط با این بحشی کلام خواه بنده بکنم امیر داره به نصف کمیل یاد میده وقتی میخوای دعا کنی اواخر دعای کمیله وجعلنی من احسن اوینی د نصیباً اندک و اقربهم هم منک و اخصهم هم لدایک. دقت کنی چی داره مولا یاد میده نمیگه اگه مثل شب جمعه میخوای دعای کمیل بخونی یه مرحله خواستن دعاست داری میای شب جمعه نماز تو خوندی کاراتو انجام دادی واجبات دعای بدون واجبات که است که آها بنده شب جمعه نمازم رو نخونم دعای کومیل بکنم. این که همه میدونیم نظر مولایی نیست. یعنی واجبات انجام بده کاراتو بکن. حالا میخوایی مناجات کنی. میخوای از خدا بخوای خدا میخوام منو بهشت ببری یه کاخ بدی خیلی قشنگ باشه. یه باغ بدی درختاش زیبا بشه. میگه و نی من احسن عبید که اندک نصیبا. منو او بنده های قرار بده كه از بهترینه بنده های تو که بهره در نزد تو داره و اقرب هم منزلتن من منزلت و مقامش پیش تو اون غریب نزدیکترین و بالاترینه و اخفت هم ظلفتن که و اون در بارگاه تو جز خصیصین و مغربان خاصل خاص تو باشم یعنی عبادت من اصعده الالله خالص عبادته حالا میخوام بحث کنم که از زهرا خالص عبادته میخواد چی بگه؟ یعنی برو اینا رو در نظر بگیر دعای عرفه این پدر میگه فرزند امام حسین علیه السلام فجح لنا اللهم فی هاد حلاشی نصیبا من كل خیر تقسمه بین عبادک و نور تحدی بهی و رحمت تنشرها و برکت تنزلها دعای عرفه رو امام حسین سرپا ایستاده با اشک متصل چشم تو دامنه جبل الرحمه داره به خدا میگه اینم تقریبا های آخر دعای عرفاست خدای از تو میخوام اینجوری برای ما قرار بدی هم ای خدای من فی هاذل اشیاء در این غروبای روز عرفه که دیگه دوام داره به آخرش میرسه از ظهر تا غروب دعا کرده چی نصیب این بهره رو به من بدی من کل خیرن تقسم رو بین عبادک از هر خیری که میخوای بین بندگان تقسیم کنی میخوام به من بدی و نور انته به با اون نوری که باعث هدایت میشه به من بدی و رحمت خدای از تو میخوام پس باید خواست که خدا بده باید عمل کرد که خدا بده باید نالدد که خدا بده باید اومد در خونه که خدا بده چرا رو خدا برده بالا؟ حالا میگم چرا زهرا به این مقام رسیده خوشبختانه اینو چند سال قبل ما بحث کردیم تکرار نمیکنم. کنم السلام علیکه یا ممتحنتو امتحنت الله اللذی خلقه که قبل انیخلقه یخلقک و وجدک که لیممتحنتکه سابره خدا تو رو امتحان کرد دید خیلی صبوری چه صبری صبت علیه خود از زهرا نمیگه مصائبی که به من وارد شد اگه به یه جوون برسه پیرش میکنه که امیر المؤمنین علیه السلام میگه وقتی بدن زهرا رو غصت میدادم غیر از پوست و استخون چیزی زیر دست من نمیومد. این افتاد پنج روزی پنج روزه این چه مصیبتی بوده انقدر سنگین انقدر سنگین که زهرایی که کفت علیه علی که سبرت و از قضا و حلق شجا این مصیبت کاری کرده که پوست و استخوان چسبیده ولی شکایت کرده بیتابی کرده بیتابی و شکایت نسبت به انحراف مردمه نه نسبت به بین خود و خدا این نواد بره نوک قله قرب الهی قرار بگیره حالا دقت بفرمایید این از دعای عرفه خدای از تو میخوام در این غروب بهتری نصیبی که به بندهات میدی به من بدی نوری که باعث هدایت بدی و رحمت تنشوره ها رحمتی که داری پخش کنی به من برسه و برکت تنزل ها اون برکتی که تو داری نازل می‌کنی به من برسه یکی که اجازه بدید از امام سجاد علیه السلام برای شما بخونم باز این قسمت رو علل و شیخ نقل میکنه خیلی هی در این رابطه دقت بفرمایید. امام سجاد تشواوردن مکه برای عمل عمره یا یا حج بوده یا ماجه که واجب انجام داده بودند مستحبی به امام سجاد عرض کردن آقا شما که از مدینه خارج شدید تشواوردید مکه باقی شما رو در مدینه اموال حکومتی غصب کردند مصادره کردن گرفتن گرفتند عبدالملک مروان هم از شام برای حج اومده مکه خب شما اگه بخوای به عبدالملک رو بزنی نمیشه که برنگردونه تا یه عبارتی به عبدالملک بگو نامه‌ای بده به استاندارش در مدینه که این باغ شما رو برگردونه برای چه زندگی شما رو مصادره کرده جوابی که امام سجاد به این دادن چیه وی حک وای بر شما از حرم الله اسأل الله غیر الله خدا آدم آتش اینا نباد برن بالا حرف نیست عمله از حرم الله على لشرای شیخ صدوق در حرم الهی اسأل الله غیر الله از خود خدا غیر خدا رو نمیخوام از غیر خدا غیر خدا رو بخوام ماجز خدا هیچی نمیخوایم. خدا میگه من نمیخواییم بیا بلا. یکی از دوستان خود من نقل کرد همین ایام پاتنگیه یه گذشته اسفهان بودم برام نقد نقل کردی از خاطرات زیبای این سفر من بود با یه مشکلی داشتم مشکل هم یک حسالت حادی بود خیلی این حسالت من رنج میداد آشد امام رزام بودم ماهی دو بار اول ما آخر ما به هر قیمتی بود میرفتم زیارت مامرزا هر چه رفتم به مامرزا بگم آقا کسالت شفا بده دلم نیاند حالا نمیخوام بگم اگر کسی اینو بخواد اشکال داره اما سطور رو ببینید حالا به کجا میرسه دوست خصوصی خود منه هیچ نه اسمی برم کسی نه او راضی من اسم برم کسی بشناسه. یه قضیه یه فیماوهی بود که قضیه برای من شد. گفت که سلام ناییماد بگم آخری یکی از این سفرها شب مشهد اومدم بخوابم از حرم اومدم بخوابم امام رضا علیه سلام به خوابم اومد فرمود که چیزی بخواب گفتم آقا خود تو میخواب. تو منی میخواب؟ گفتم بلی بخواب بازم چیزی بخواب گفتم بازم خودتون تکن از شما دل بکنم امتحان سخت و گایی پول باعث میشه گاهی مقام گاهی پول ندارن پول پیدا می یه جور دیگه میشن. گاهی پول دارن پول از دست میری یه جور دیگه میشن. گاهی شهرت دارن شهرت از بین یه جور دیگه میشن. گاهی شهرت ندارن شهرت میاد یه جور دیگه میشن. و محات هزار گوی اینالی می فهمیدم گفتم آقا خود تو میخوام. فردا شب آقا به خواب من اومدم دوباره فردا شب تو خواب فرمودن که چیزی به از من گفتم آقا به خدا قدر دوست دارم که غیر از خودت هیچ هیچی نمیخوام آقا چی فرمود؟ فرمود حالا که منو دوست داری منم دوستت دارم بید یه دست به سرت بکشم دست به سر ما کشید که سالت رفت که, هنوز که هنوز رفته چون صدامت نبد پیش ماست این معرفته این فهم در حد یک بندی یک فرد عادی نسبت به امامش امام نسبت به خدای خودش لذا وقتی آیه سوره آل امران آیه سوره خود صده و 119 داره خود خدا میگه من اگه اختلاف در این عالم قرار دادم اصلا برای این خلق کردم یه کاری بکنن میتونن بیان بالاتر بیان بالاتر کاری بکنید بگیرید حالا که این کارار کردن گرفتن نمونههاشو دعای کمیل به ما اینجوری یاد میده دعای عرفه به ما اینجوری یاد میده امام سجاد توی مکه اینجوری به ما یاد میده حالا جانم فداد بیویجن بی تو چجوری به ما یاد دادی ریاهینوشریعه نقل میکنه و وقای ایام نقل میکنه جبرائیل نازل شد بر پیغمبر خدا که میدونه پیغمبرم میدونه برای اینکه ما یاد بگیریم به زهرا بگو این همه میخونه چی میخواد هر چی میخواد بشمیدیم میدیم ولی خدا نمیدونه مگه جبرائیل و پیغمبر نمیدونن پیغمبر اومد بعد زهرا سلام علیه ها علیها رو خاص فاطمه جون پاها ورم کرده در اثر عبادت و هکذا که میدونید جبرائیل اومده میگه خدا سلام میرسونه چی میخای ببینید بلا تشویق علاقه من به امام رزا میگه خودت چون خدا داره به زهرا میگه چی میخوای یا ابتا شغلتنی میعنل مسئله لذت و خدمتهی لا حاجتلی لا حاجتلی غیر لغا رب یا کریم دار السلام و وقت خدا چی بهش میده؟ حالا دقت کنید البته این حرف نده تو عمل حالا نشون میدم این شبه. من غیر خدا چی نمیخوام. غیر خدایی چی نمونه فقط میام غیر خدا چی نمیخواست خب یه قلم درآمد از زهرات و فدک چقدر بود این چند سالی که زهرا و سلام ها در حیات پیغمبر فدک در اختیارشون بود و هنوز مسئله خلافت جعلی نبود و مسادره فدک نبود درآمد در اختیار در علی و زهرا بود یا نبود این چند سال که بود اگه با این درآمد زهرا می‌خواست سلام الله علیها 10 تا کارگر تو خونش بگیره، با درآمد فرق میشد یا نه؟ چقد دست آس کرده که درسا سلمان میگه وارث شدم، دیدم با یه دست زهرا تو بر... حسین تو بغلشه داره شیر میده. با یه دست داره آسیاب دستی رو می‌گردونه. دستام تاول داره. گاهی هم شاید مثلا جراحاتی پیدا کرده. لبم مشغوله و ما الله خیرون و اوغا گریم گره به پیغمبر گفتم کمکی برای زهرا معین کنی زهرا با یه دست بچه بغل داره شیر میده با یه دست برای آسیاب دستی رو میگردونه با لبم داره ذکر میگه که برخی نقل میکنن که گاهی زردی چهره زهرا ها از گرسنگی چند شبان روزش بوده که رو تو کتب روایی ما داره پیغمبر فرمودن من فدزه رو براش گماشتم اومدن زهرا جان فرمود من گفتم فذه یه روز تو کار کن یه روز من امروز نوبت منه فدزه باد استراحت کنه این حرف میزنه میگه من غیر از لقای خدا چیزی نمیخوام یا تو عمت خدا چجوری میخواد خدا میگه باید از امام زمانت حمایت کنی میان بین در و دیوارهای صدای شکستن دنده منم به گوش دیگران برسه ولی خدایی رو میخواد. همون جوری که پسرشم تو گودال قتلگاه میگه الهی رزن به رضاء آی جبون عاشق میشی چی نهتر از زهراب و علی داری که عاشقش بشی به خدا قسم به خدا قسم به خدا قسم اون باید بنالیم که دل ما از این کنده بشه جای دیگه بره اون دیگه دل نیست چه ارزشی بالاتر از این ما دیوونه این خانواده بله چون هر ارزشی رو در این ها دیدیم کجای آدم سراغ دارید به من نشون بدید من برام سراغ اونا مثل عل مثل زینب و کلسوب مثل حسن و حسیب مثل قمر بنی هاشم نشون بدید اینا رو میخوان از ما بگیرد دل آمون رو جایی دیگه ببریم اما نه خدا اول از تو میخوایم دل ما رو در این خانه نگه داری دومم بیایم دعا کنیم عشق بریزیم بخوایم که دل تو این در خانه دل داده بشه خب این زد چی میخوای زهراجان؟ یابتا شغلتنی ان المسأله بابا جان اون قدر منو مشغول کرده چی؟ لذت و خدمته لذت خدمت خدا که اصلا جایی برای درخواست من ندارم حاجت تری من این چی نمیخوام غیر اللقاء ربی الکریم فی دار السلام در اون عالم بالای قیامت خدا منو نگاه کنه لقاء رب میخوام خب خدا میگه چجوری زهرا رو نگاه میکنم فیض نخست و خاتمه نور جمال فاطمه چشم دلر نظاره بر مبدا و منتها کند من دو حدیث یکی از شیعه یکی از سنی سری میکنم بریم تو روزم شب حالا انشالله اینا رو ادامه بدیم شبایی دیگه یک از کتاب شیعه بهار جلد 43 صفحه صدق ان جابر ان ابی عبدالله قال جابر جعفی از امام صادق علیه السلام نعقل میکنه قال لما سمیت فاطمت و زهرا زهرا آقا جون برای چی زهرا رو زهرا میگم فقال امام فرمود لأن الله عز وجل خلدها من عظمت سلم ما اشرقت ازات سماوات و الارض به نورها زهرا زهره درخشنده است به این جهت زهرا میگن خدا زهرا رو به عظمت برده نگفت مختلف میشن این درجه بالای زهرا اونجاست که فلما اشرقت وقتی شهری نورانی ملکوتی زهرا در عالم حقائق ملکوتی مشرق گرفت تا گرفت اضاءت سماوات و الارض به نورها عالم را آسمان و زمین را به نور خودش روشن کرد و قشیت ابسار الملائکه چشمان ملائکه به هم آمد از شدت نورانیت و خررت الملائکه لله ساجدین و غارون کمام ملائکه به سجد افتادن و گفتن الهنا و سیدنا ما هازن نور خدای ما آقای ما این چه نوریه که عالم رو فرا گرفته فاوحلا الیهم خدا به ملائکه وعی کرد هازا نور من نوری هازا نور فاطمه هازا نور من نوری جلوه نور منه یعنی انقدر بالا اومد از من نور گرفت نور منو داره فاطمه با عالم منعکس میکنه خاری کرد که در این درجه با اونجا رسید اینه شیعه گفته از سنی تبری ابن عساکر تاریخ و دمشق شواهد و تنزیل حاکم عسکانی از منابع معروف اهل سنت با رسول الله پیغمبر فرمود ان الله خلق الانبیا من اشجار شتا و خلذنی من شجره واحده خدا همه انبیا رو در یک رتبه قرار داد منو در یک رتبه دیگری که با این استدلال آیه اینا کاری کردن که خدا اینا رو بالا برده به با اون زیارت حضرت زهرا که یک شنبه ها میخونید خدا کاری کرد حضرت زهرا تو امتحان خودشون نشان داده خدا به این مقام برده و خلقنی من شجره واحده من یه ریشه دیگری دارم من حساب دیگری دارم فعنه اصلها این شجره و این درختی که خدا در یه فتحه دیگه قرار داده ریشهش منم و علی یون ساغه آخه ریشه زیر زمینه ساغه میاد بالا خودشو نشون میده حقیقت من و علی داره نشون میده درخت وجود من که داره میاد بالا علیه و فاطمه طلقه ها درخت لغا نداشته باشه میوه نداره میوه درخت نبوت و فاطمه است اگر ریشه نبیه ساده وریه نیگه میوه دادن فاطمه است و حسین سمر و ها میوه این درختم هم حسن حسینه که حالا اگر وقت بشه توضیح بدن شبایی دیگه چطور فاطمه باعث میوه دادن این درخته و حسن حسین اگه نبودن این درخت بی میوه بود آیا یه درخت معمولی که گل قشنگی میده یه درخت معمولی که میوه قشنگی بده ساقش رو میشتنن که بسوزونن یه شاخه گلو یا آخ این گل به این قشنگی رو قیچی کردی نذاشتی گل وجود زهرا را شاخه توبارا شجره نبوت و ولایت را به چه صورت سوزندن من نمیدونم انقدر بگم بگم به زانو درآمد. علی به زانو در, زانو در امشب شب آخریه که اگه برگردیم ممکنه یه در جوان عزیزی از آقایون خانمها به ذهنش خطور کنه هزار 1400 سال گذشته حالا دیگه چرا گریه میکنی بله بد کردن ظلم کردن تموم شد گذشت ولی حالا شما اول صحبت گفتی دوست دارم همه امشب روزه بخونم. حالا که میگید دارید ما رو میگریونید. خب حالا که تموم شد. بله بد کردن ولی تموم شد. میدین برای چی گریه میکنید. آقا دل تا به درد نیاد که اشترچیش نمیاد. برای چی دل به درد میاد؟ برای اینکه مثلا انظر ظاهری دنیایی رفتن حق زیر پا شد. ارزش لح شد. بشریت فنا شد راه خدا رو لگد مال کردن در مقام تشبیه خاک بر فرق من و تمثیل من یه شاخه گلو رو ببرن بندازن تو آتش میگید چرا اصلاف کردید نفل کردید این وجود را حالا بریم به چارده قرن قبل اثرش هنوز واقعی است منو شما که گریه میکنیم که شب قدیره امام زمان علیه السلام رو در عالم مکاشفه و دید زانوی قم بغل کرده آقا جون شام اید شما فرمود مگر بعد از بیت و ما اید داری علامان نقل وقتی امام عصد در مکه ظهور می با اون عظمت و کبکبه الهی وارد مدینه می شود سر راش همه چی داره به ازن الله هموار میشه. با شوکت و جلال الهی داره حرکت میکنه یه وقت میبینن آقا یه جایی تو مدینه میشینه زار زار شروع میکنه به گریه کردن آقا جون فداتون شیمگبنن هست چیشو شما در میگه این مکان مکانیست که مادرم زهرا رو اینجا کتر این مسئله ساده ای کار قرنهاست دل همه برجستگان آلم را به درد آورده میادیم شب دست جمع بریم خانه امیر با چشم دل با پای دل ولی اول میخوام عرض کنم یا امیر آقا آبا شما ابن ملجم وقتی که اسیر شما بود به امام مجتبا سفارشش کردی ما که شیعه شمایی محب به شمایی همه این جمع شما رو دوست داره برای عرض تسلیت ساعت مقدس امام عصر تو این مجالس جمع میشن حالا میخوایم بیایم پناهنده به خانه مشکل عالم عالم وجود علی بشیم ولی علی که مشکل گشای همست امشب مشکل خودش لاینه هست حالا ما نقل بیانات رو اگر به شعر در آوردن اونگونه که نقل میشه اونچه نورسته ما را چیدند سفره زندگیم ام شب که تاریک شود مح من از شم بسوزد دل من حال بیمونه سویارم چه کنم زاده به کارم چه کنم یا علی گره به کار افتاده شب میخوام بیام چه خوناتو زانو بزنیم از شما هم انتظار انایت داریم مولا ولی امشب من تصور میکنم نمیخوام بگم اینجوری که دارم میگم نوشتت دار دارم تصورم و نسبت نمیدم من فکر میکنم امشب بستر زهرا پهنه علی یه گوشه نشسته گای چشماش دوخته به زهرا گای نگاه چهره حسن میکنه گای نگاه چهره حسین میکنه گاهی نگاه به زینبین میکنه خانواده خانواده خاصیه من می میکنم علی میخواد بناله، ولی ملاحظه بچه ها رو میکنه بچه ها میخواد صداشون رو بلند کنن ملاحظه حلی رو میکنن زهرا میخواد ناله کنه ملاحظه علی و بچه ها رو میکنه اما اینو دیگه تاریخ داره اینه که میخواد بگم یه وقت زهرا چشماش دوخ به علی. و علی گفت علی جان گریه خال. برای چی؟ برای چی؟ علی میگه گریه کن جلو بچه های خرساله، کم سن سال از نظر ظاهری نمیدونم شاید این باشه برخی نقل میکنن میگن وقتی زهرا چشمهاشو به علی دوخمس امشبی پرده این علی داره سکته میکنه علی داره جان میده مسیمت زهرات علی از پادر بیاره لذا گفت علی گریه کن این بغض گلو علی علی بترگه علی شروع کرد گریه کرداد قدر آداش که چشم علی میگلتی یا دست لرزان زهرا دراس شد اشک صورت علی رو پاک میکرد و اشک و به بدن خودش میمانید از بابام رسول خدا شنیدم بدنی که به اشک مظلوم آخشنه باشد در آتش جهنم نمیسوزد علی افسه مظلوم تر سراغ ندارد یا علی یا علی با دل علی چکر یه کی از فردا عصر رو بگم از فردا شب بذارم اگه عمری بود فردا شب عرض کنم فردا مثل بعد از ظهری زهرا سلام الله ها نماز ظهر عصر رو خوندن به اسما فرمودن اسما نمیخوام جان دادن من علی ببین غابر علی مسعود این علی رنج کشیده دیگه نمیخوام شاهد جون دادنش در واقع جون دادن زهرا جون دادن خود علی نمیخوام علی ببین یه جوری از علی به خاطر از ما اومد خواهش کرد از علی و بچه ها دارید مسجد اینا روانه مسجد شده اسما میگه گفت آب بیار میخوام اذف کنم اضف کرد گفت اسما منو به حال خودم بگذار برو بیرون اتاق من میخوام عبادت کنم راز نیاز کنم لحظاتی بعد منو صدا کن اگه جواب دادم یکی، کی اگه نه برو علی رو خبر کن اسما میکه مشت در نشست غلبا داره از جا مدینه میلرزه روی یا آسلان داری تیرم و تارمیزد خدای آشمه اتفاق بیخشد بعد از با هر کیفیتی قدرت پیدا کرد در حجره زهرا رو ما کرد ایدم زهرا رو به قبل خوابیده پرچه روی خود کشم صدا زدم یا بنت رسول الله یا امه الاسن و اله حسین یا زوجه تولیی الله دیدم جواب نیومد لرزیدم دوان دوان به طرف مسجد همین که رفتم از اتاق برم خونه برم بیرون دیدم حسین و حسین دوتایی دارن میاد دارن به طرف حجر جلو و ها رو گرفتم بچه ها بیانی میخوام براتون غذا آواده کنم از ما دست از دل من بردار با کیبی مادر منو غذا <تصفيق> از ما میگه دیدم حسن اومد این صورت شو به کف بای مادر جذبون مادر حسن تو هم با من سکن بگو حسن این صورت سینه مادر بذاشته من راستم متشه وقتی حال من علی دید عبارت مقتل و عفر دیدم مخصوصا علی تو مرسجب غشگر آب به صورت علی باشید این که آراد مصدتا خونه علی این نشه از نبول It's all that you've توی ال Az the mullahs are all وَكْفِنَا يَا غَوْتِيَ الْعَاجَبِ وَيَا كَوْتِيَ الْمَئِمْغَى إِن, ان برحمتك يا یا زلجلال ملک را یا زلجلال ملک را یا زلجلال ملک را یا سریع رزا یا سریع رزا یا سریع رزا اغفر لمن لا یبنکو الا الدعا و سلا يا یا ساب یا یا نور المصدوشی نفز و بله. لف خدا علی و علی. خدا فزیه امشب و متشکرم الله الله الله زمان یا مدبر و دبر یا مفرج و فر یا مصبب و صبب یا مکمل و کمل یا الله چشمان ما و جمال مولای ما روشن و منور به گرده توفیق زیارت حضرت در عمر ما خدمت در ظهور عزت برخورداری از انایت و نظرت به همه ما انایت و فرمان قلوب ما به نور ایمان روشن و منور بگردان گردان جوان آیا ما در سایه اینای تمام زمان در مسیر دین ثابت قدم بذار نقشای دشمنان به خودشون برگردار دست ما و نسل ما از دامن باطمه و زهر کتاب و فرمان خویشو بشو روی این شام به